بخش دوم سیمای جنگ در کربلا و حوادث آن لشکر کشی به سوی کربلا عبیدالله ابن زیاد فرماندار کوفه حاکم همه سرزمین عراق یاران و لشکر خود را برای جنگ با امام حسین علیه السلام بسیج کرد آنها از فرمان او اطاعت کردند او همچون فرعون قوم خود را سبک شمرد و در نتیجه آنها از او اطاعت کردند ابن زیاد آخرت عمر ابن سعد را به دنیایش خرید و او را به عنوان امیر و فرمان روای جنگ دعوت کرد او به این دعوت پست جواب مثبت داد و با چهار هزار سوار به جنگ با حسین علیه السلام خارج شد ابن زیاد لشگرهای دیگری به دنبال او به حرکت درآورد تا این که در روز ششم محرم بیست هزار جنگ جو در نزد عمر سعد در کربلا اجتماع کردند عرصه را بر حسین علیه السلام تنگ کردند تا آنجا که تشنگی را بر امام علیه السلام و یارانش تحمیل نمودند خطبه امام حسین علیه السلام در معرفی خود امام حسین علیه السلام برخاست و بر شمشیر خود تکیه نمود و با صدای بلند چنین فرمود شما را به خدا سوگند میدهم آیا مرا میشناسید؟ گفتند، خدا را شاهد میگیریم آری تو فرزند رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلم و سبته او هستی. فرمود، شما را به خدا آیا میدانید که جد من رسول خدا، صلی الله علیه و آله و سلم است؟ گفتند، آری به خدا. فرمود، شما را به خدا آیا میدانید که مادرم فاطمه علیها السلام دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم است گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا میدانید که پدرم علی ابن عبی طالب علیه السلام است گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا میدانید جده من خدیجه علیها سلام دختر خویلد نخستین زنی است که به اسلام گروید گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا میدانید که حمزه علیه السلام سید شهیدان عموی پدرم است گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا میدانید که جعفر طیار در بهشت عموی من است گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا میدانید این شمشیری که در دستم است چمشیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که من آن را به همراه گرفته‌ام هم؟ گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا میدانید که این عمامه که بر سر دارم عمامه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و من آن را ام؟ گفتند آری به خدا فرمود شما را به خدا آیا می دانید که علی علیه السلام نخستین انسانی بود که مسلمان شد و بیشتر از همه مردم دارای علم بود و حلمش از همه وسیع تر بود و او رهبر هر مرد و زن با ایمان است؟ گفتند آری به خدا فرمود پس چرا ریختن خون مرا مباه می دانید با این که پدرم فردای قیامت حوز کوسر را در اختیار دارد و گروهی را از نوشیدن آب دور سازد همان گونه که شطر تشنه را از آب باز دارند و در روز قیامت پرچم سپاس و تقدیر در دست اوست. گفتند آری همه اینها را می دانیم ولی ما تو را رها نمی کنیم تا مرگ را با لب تشنه بچشیم گریه جانسوز بانوان حرم پس از آن که امام حسین علیه السلام این خطبه را به پایان رسانید و دشمنان آنگونه پاسخ دادند دختران امام حسین علیه السلام و زینب علیه السلام سخن جانسوز و غریبانه امام حسین علیه السلام را شنیدند سخت منقلب شده و به شدت گریه کردند شیون نمودند و سیلی برصورت میزدند و صداهایشان به گریه بلند شد امام حسین علیه السلام برادرش عباس علیه السلام و پسرش علی علیه السلام را برای آرام کردن بانوان به سوی آنها فرستاد و فرمود آنها را آرام کنید به جانم سوگند گریه های بسیاری در پیش دارند رد شدید اما نامه شمر برای عباس علیه السلام و برادرانش از سوی ابن زیاد نامه ای به عمر سعد رسید که در آن تاکید کرده بود به جنگ و شتاب در درگیری با حسین علیه السلام و یارانش و او را از هر گونه تأخیر و مهلت دادن و مسامه برحضر داشته بود. به دنبال این نامه به فرمان عمر سعد گروه دشمنان سوار بر اسب ها شدند و به طرف خیمه های امام علیه السلام نزدیک گردیدند. شمر خود را به خیام امام حسین علیه السلام و یارانش نزدیک کرد و صدا زد خوهرزاده عبدالله جعفر عباس و عثمان کجایند؟ امام حسین علیه السلام به عباس علیه السلام و برادرانش فرمود جواب شم را بدهید گرچه فاسق است چه آنکه او یکی از دایهای شماست عباس علیه السلام و برادرانش گفتند به ما چه کار داری؟ شم گفت ای خوهرزاده شما در امان هستید خود را همراه برادرتان حسین علیه السلام به کشتن ندهید و به اطاعت امیر مؤمنان یزید ابن معاویه درایید. حضرت عباس علیه السلام به او چنین پاسخ داد. دو دست هایت برید باد و بر آنچه از امان را آورده لعنت باد ای دشمن خدا. آیا به ما امر میکنی برادرمان و آقایمان حسین علیه السلام پسر فاطمه علیه السلام را رها کنیم و پیرو ملعونان و ملعون ملعون زادگان شویم شمر در حالی که خشمگین و صرف بود به سوی لشکرش باز گشت مهلت خواستن یک شب و مهلت دادن دشمن روز نهم محرم بود امام حسین علیه السلام دریافت که دشمنان در تعجیل جنگ حرص میورزند و محاصره را تنگ تر می‌کنند و کمتر به پندها و اندرزها توجه دارند به حضرت عباس علیه السلام فرمود اگر بتوانی امروز دشمنان را از جنگ با ما منصرف سازی این کار را انجام ده شاید امشب برای پروردگارمان نماز بخوانیم چرا که خدا میداند من نماز برای او و تلاوت آیات قرآنش را دوست دارم عباس علیه السلام نزدیک دشمن رفت و از آنها مهلت خواست عمر سعد از پاسخ دادن سکوت کرد امر ابن حجاج زبیدی یکی از سران دشمن گفت سوگند به خدا اگر اینها از ترک و دیلم بودند و از ما مهلت می‌خواستند جواب مثبت می‌دادیم تا چه رسد به این که از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند پس از این گفتار پیشنهاد مهلت را پذیرفتند خواب دیدن حسین علیه السلام و گریه زینب علیها السلام امام حسین علیه السلام نشست و اندکی به خواب رفت و سپس بیدار شد فرمود خواهرم، من در همین لحظه جد محمد صلی الله علیه و آله و سلم و پدرم علی علیه السلام و مادرم فاطمه زهرا علیها سلام و برادرم حسن علیه السلام را دیدم به من گفتند ای حسین تو به زودی نزد ما میایی و به قولی فرمود فردا نزد ما میایی زینب علیه السلام تا این سخن را شنید از شدت اندوه سیلی بر صورت زد و فریاد و شیون کشید امام حسین علیه السلام به زینب علیها السلام فرمود آرام باش ما را مورد شماتت و سرزنش دشمن قرار نده حوادث شب آشورا تمجید امام حسین علیه السلام از اصحاب خود شب آشورا فرا رسید امام حسین علیه السلام همه اصحاب خود را به نزد خود جمع کرد پس از همد و ثنای الهی به آنها رو کرد و چنین فرمود اما بعد همانا من یارانی را بهتر از شما و خاندانی را بهتر و نیکوتر از خاندانم نمی خداوند از ناهی من به همه شما پاداش نیک انایت فرماید اکنون پرده تاریکی شب همه جا را فرا گرفته است آن را شطر خود قرار دهید و شبانه بدون شرم بروید. هر یک از شما دست یکی از خانواده مرا بگیرد و از اینجا پراکنده و دور شوید مرا تنها با این دشمنان باقی گذارید زیرا آنها تنها به من کار دارند اظهار وفاداری بستگان برادران و پسرانش و پسران عبدالله ابن جعفر شوهر زینب علیه سلام گفتند برای چه این کار را بکنیم؟ برای اینکه بعد از تو بمانیم؟ هرگز خداوند چنین چیزی را به ما نشان ندهد. نخوست حضرت عباس علیه السلام این سخن را گفت سپس بقیه در این گفتار از او پیروی کردن. در این هنگام امام حسین علیه السلام به فرزندان عقیل توجه کرد و چنین فرمود: کشت شدن مسلم علیه السلام در خانواده شما برای شما کافی است؟ من به شما اجازه دادم از اینجا بروید و طبق روایت دیگر در این هنگام همه برادران و افراد خاندانش یک صدا گفتند ای پسر رسول خدا اگر ما برویم مردم چه میگویند و ما به آنها چه بگوییم از این رو که بزرگ و آقا و امام من پسر دختر پیام بر من را رها کرده ایم و همراه او نه تیری به سوی دشمن رها کرده ایم نه نیزه افکنده ایم و نه شمشیر زده ایم نه به خدا سوگند ای پسر رسول خدا هرگز از تو جدا نخواهیم شد بلکه با جان و دل از تو نگهبانی کنیم تا در پیش روی تو کشته شویم و دست خوش سرنوشت تو گردیم خداوند زندگی بعد از تو را زشت گرداند اظهار وفاداری یاران از غیر خیشان در این هنگام مسلم ابن اوسجه برخواست و چنین گفت آیا ما تو را این رها کنیم و از اینجا برویم؟ با اینکه دشمنان گرداگرد تو را احاطه کرده اند؟ نه به خدا سوگند خداوند هرگز مرا چنین ننگرد من در اینجا هستم تا نیزه را در سینه دشمنان بشکنم و تا شمشیر در دستم هست آنها را با شمشیرم بزنم و اگر بدون اصله شدم با پرتاب سنگ با آنها نبرد می کنم. من از تو جدا نشوم تا در رکاب تو کشته شوم پس از مسلم سعید ابن عبدالله حنفی برخاست و چنین گفت نه به خدا سوگند ای پسر رسول خدا هرگز تو را رها نمی کنیم تا این که خدا بداند و شاهد باشد که سفارش رسولش محمد صلی الله علیه و آله و سلم را درباره تو حفظ کردیم و اگر من بدانم که در راه تو کشته میشم سپس زنده میگردم، بار دیگر کشته میشم، سپس زنده شده و سوخته میشم و بعد از آن خاکستم را بر باد میدهند و هفتاد بار با من چنین خواهند کرد از تو جدا نگردم تا در رکاب تو کشته شوم. تا چه رسد به این که کشته شدن تنها یک بار است و پس از آن به کرامت و عزت می رسم. کرامت و عزتی که ابدی و فنا ناپذیر است پس سعید زهیر ابن غین برخاست و چنین گفت سوگند به خدا ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دوست دارم که هزار بار کشته شوم و زنده گردم در عوض خداوند کشته شدن را از جان تو و جان این جوانان از برادران و فرزندان و بستگانت دور سازد پس از او گروهی از یاران امام حسین علیه السلام برخواستند و همین گونه سخن گفتند و چنین اظهار داشتند جانمان به فدایت باد ما با دستها و صورتهایمان از تو نگهبانی میکنیم. هرگاه ما در پیش روی تو کشته شویم به عهد خود با خدا وفا کرده ایم و مسئولیت خود را به انجام رسنده ایم اعطای پنج قطعه الباس برای آزاد سازی اسیر به یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام به نام محمد ابن بشیر حضرمی خبر رسید که پسرت در مرز منطقه ری به اصارت دشمن درآمده است او گفت گرفتاری او و خودم را برای خدا منظور می کنم من دوست ندارم که پسرم اسیر گردد و من بعد از او باقی بمانم امام حسین علیه السلام گفتار او را شنید به او فرمود خدا تو را رحمت کند تو را از قید بیعت آزاد ساختم در مورد آزاد نمودن پسرت از اسارت اقدام کن محمد بن بشیر گفت درندگان مرا زنده بدرند و بخورند اگر از تو جدا شوند. امام حسین علیه السلام چند قطعه برد یمانی به او داد و فرمود این ها را به پسرت بده تا او با فدیه دادن اینها در آزاد سازی برادرش استفاده کند آنگاه پنج قطع الباس را به محمد ابن بشیر انایت کرد که بهای آن هزار دینار بود مناجات حسینیان و پیوستن و دو نفر از دشمن به آنها امام حسین علیه السلام و یارانش شب آشورا تا به صبح براز و نیاز و مناجات با خدا بسر صدای ناله و زمزمه آنها همانند آوای بال زنبور اصل بود بعضی در رکوع بعضی در سجده و برخی ایستاده و نشسته مشغول عبادت بودند از لشکر عمر سعد دو نفر که از آنجا عبور می‌کردند تحت تاثیر قرار گرفته و به لشکر امام حسین علیه السلام پیوستند